وصل سیزده دوستی با آن راهزن زن کزیمو را دوچار شوری بیش از اندازه برای خواندن و دانش آموختن کرد شوری که تا پایان زندگی با او بود پس از آن بیشتر او را میدیدی که روی شاخه راحتی نشسته بود و کتاب میخواند یا چون کودک دانش آموزی روی شاخهای خم شده بود و تختهی پوشیده از برک های پراکنده کاغذ در برابر داشت. دواتش را در فرو رفتگی گذاشته بود و قلم بزرگ پر اردکش روی کاغذ می آمد و می رفت. دیگر او بود که به جستجوی کشیش فوش لا فلور می رفت تا از او درس بگیرد. از او می خواست که در باره اوید، جرم های آسمانی و شیمی به او چیز بیاموزد. اما کشیش پیر جز اندکی صرف و نه و علوم دینی چیزی نمیدانست و به تته پته در برابر هر پرسش شاگرد دست را از هم می و و چشم آسمان میدوخت. جناب کشیش یک ایرانی چند زن می داشته باشد؟ پدر روحانی کشیش سوایار کی بوده؟ جناب کشیش میتوانید سیستم لینه را برای من تشریح کنید؟ کشیش در پاسخش میگفت. بله، ارز می شود که البته... اما بیش از آن چیزی به ذهنش نمی رسید. گیج میشد و در می ماند. کوزیمو هر نوع کتابی را با ولع می خاند. نیمی از وقت خود را به کتاب میگذراند می و نیم دیگر را به شکار می پرداخت تا بدهی خود را به که کتاب فروش بپردازد. هر بار که او را میدیدی، دیدی چیز تازهی فرا گرفته بود و بازگو می کرد. درباره ژاک روسو که هنگام گردش در جنگل سوئیس نمونه گیاهان را برای بررسی گرد میآورد درباره بنجامین فرانکلین که با بهرهگیری از بادبادک به پژوهش درباره آزرخش می و یا بارانهانتان که در میان سرخ پوستان و آمریکا میزیست فوشلافلور پیر با شگفتی گوش می کرد. اما روشن نبود که شگفتیاش از کنجخواوی است یا از اینکه میدید دیگر خودش از چیز آموختن به برادرم معاف شده است و احساس آسودگی می کرد پیاپی سرتکان میداد و هر بار که کزیمو از او می میدانید به چه دلیل در پاسخش می گفت نه خود شما بگویید و با شنیدن پاسخی که کزیمو به پرسش خودش داده بود می گفت درست است: خیلی جالب است یا اینکه وای خدا که این عبارت می هم به معنی ستایش از جلوه های تازه از عظمت خداوند باشد که با آن آشنا می و هم به معنی تأسفش از حضور همه جاگیر شیطان که هر لحظه به شکلی در می آمد و بر این جهان خاکی فرمان میراند. کوزیمو بسیار درش میخواست درباره چیزهای های تازه ای که از کتابها میآموخت گفت و گو کند و آنها را بشکافد. اما من کوچکتر از آن بودم که آنگوونه بحث را بفهمم. و دیگر دوستانش همه بیسواد بودند. از این رو به سراغ کشیش پیر میرفت و او را با بحث ها و توضیحات خود گیج میکرد. کرد. کشیش فوشلافلور از آنجا که باور جرفی به پوچی و گذرایی همه چیز داشت، آدمی بسیار رام و برد بار بود. کوزیمو از این روحیه او استفاده میکرد. چیزی نگذشت که رابطه ی شاگردی و استادی جا به جا شد. برادرم چون آن نفوذی بر کشیش پیر یافته بود که او را وامی داشت با تن لرزان به دنبال او برود و در گشت و گذارهایش بر فراز درختان همراه او باشد یک بار او را واداشت تا سراسر بعد از ظهری را بالای شاخه شاه بلوطی در باغ خانه ریوالانده بگذراند و درختان کمیاب آن باغ و باستاب آفتاب دم غروب بر آبگیر پر از نیلوفرهای آبی را تماشا کند در این حال خودش پیاپی درباره نظامهای پادشاهی و جمهوری، گونهگونی برداشت از راستی و درستی در مذهب مختلف، آین چینی، زمین لرزه لیسبون و نظریه اصالت حواس سخن میگفت. ساعت درس زبان یونانی من فراره هر هرچه منتظر شدیم کشیش نیامد. همه خانواده بسیج شدند و به جستجوی او پرداختیم و به همه جا سرزدیم. حتا با چوب درازی کف استخر را هم وارسی کردیم آنچنان حواس پرت بود که میترسیدیم به آنجا افتاده و غرق شده باشد شپنگام پیدایش شد از درد پشت و کمر مینالید زیرا چندین ساعت را در وضعیت دشواری بالای درختان گذرانده بود این نکته را نباید فراموش کرد که کشیش فوش لا فلور بود از این رو رامی و تسلیم پذیریش گهگاه از میان میرفت، و شور و تعصب فرقیش جای آن را می گرفت. بر اثر آن روحیه بی گاه می‌شد که بی هیچ مقاومتی هر گونه نظریه نوین و آزاده را بپذیرند. مانند برابری همگان در برابر قانون، پاکی سرشت مردمان وحشی یا زیان باورداشتن به خرافات. اما یک ربعه ساعت بعد نیاز درونیش به پیروی از زابطه های و آشتی ناپذیر اخلاقی او را وامی داشت تا آن نظریه ها را دگرگون کند و با ثابتهای خود هماهنگ سازد از این رو برداشت او از موضوعهایی چون وظایف اجتماعی مردمان آزاد و برابر یا اخلاق متکی بر کیش طبیعی حالت مقررات نظامی خشک و نرمش ناپذیر را به خود می گرفت و به صورت اصول اعتقادی بسیار تعصب آلودی در می آمد. به گفته او هر آنچه در بیرون از این چارچوب جا می گرفت، همه فساد و پلیدی بود. می گفت که فیلسوفان تازه در ستیز با بدی بیش از اندازه نرمش و ساده انگاری نشان می دهند و راه رسیدن به کمال که راه دشواری است، جایی برای سازش و نرمش نمی گذارد. در برابر این گونه واکنش های ناگهانی کشیش، کزیمو خاموش می ماند و چیزی نمی گفت. می ترسی پیرمرد او را به خیال بافی و چرندگویی متهم کند. جهان خوش و خرمی که او میکوشی در ذهن خود زنده کند در برابر کشیش چون گورستانی مرمرین خوشک و بیروه می شد. خوشبختان کشیش از این گونه واکنش های خود بسیار زود خسته می شد. برایش نمی ماند. گویی آن همه کوششی که می کرد تا سر و ته هر نظریه و برداشتی را بزند و آن را در اصلی خشک و بیروح خلاصه کند، خود او را نیز به صورت شبهی سباک و لمس نکردنی در می آورد. پلک هایش را به هم می زد. آهی و سپس خمیازهی می کشید و انگار به نیروانا می بدین گونه درگیر و دار این دروحیه متضاد کشیش فلور سراسر روز خود را به دنبال کردن پجوهش های کزیمو می گذرم. پیاپه از نزد او به کتاب فروشی اوربک می رفت و کتابهایی را سفارش می داد که باید از آمستردام یا پاریس می آمد. این چونین تیشه به ریشه خود می زد. این خبر که در اون بروزا هست که با کتابهایی سر و کار دارد که در سراسر اروپا تکفیر شده است دهان به دهان گشت و به دادگاه ویژه روحانیان نیز رسید. در بعد از ظهر یکی از روزها دو پاسبان به خانه ما آمدند. تا اتاق کشیش را وارسی کنند. در میان کتاب های دعا از بیل پیدا کردند. برک کتاب هنوز به هم چسبیده بود و روشن بود که خوانده نشده است. با این همه به خاطر همان کتاب کشیش را گرفتند و بردند. بعد از ظهر عبری قمنگیزی بود. آن صحنه را درست به همان گونه که آن روز با حالتی هراسالود از پنجره اتاقم می‌دیدم، به خاطر دارم. از خواندن دستور زبان یونانی دست کشیدم. چه میدانستم که دیگر درسی در کار نخواهد بود. کشیش پیر همراه دو پاسبان مسلح راه میان باغ را میپیمود و دور میشد سرش را به سوی درختان بلند کرد و لحظه ای بر خود لرزید. انگار میخواست به سوی نارونی بدود و از آن بالا رود. اما پاهای ناتوانش از پس آن کار بر نیامد. کازیمو برای شکار به جنگل رفته بود و ندانست چه خبر است. حتی به هم بدرود نگفتند. برای کمک به کشیش هیچ کاری نتوانستیم بکنیم. پدرم به اتاقی رفت و در را به روی خود بست و به هیچ چیز لب نزد. میترسید یسویان زهر خورش کنند. بقیه زندگی کشیش فوشلافلور در زندان یا صومعه گذشت. پیاپی او را به توبه و انکار خود با داشتند. سرانجام پس از عمری که وقف ایمان خود کرده بود، درگذشت. گذشت. بیان که به درستی بداند، به چه چیزی باید ایمان می‌داشت. اما تا واپسین این زندگی، کوشید، ایمانش راسخ باشد. هرچه بود، بازداشت که شیش هیچ اثری بر پیشرفت کزیمو در زمینه آموزش دانش نگذاشت. در همین دوره بود که با بزرگترین فیلسوفان و دانشمندان اروپایی نامه نگاری میکرد. در نامه های خود از آنان میخواست تا برخی مسائل یا نکته هایی را که به آن برمی برایش روشن کنند یا تنها برای لذت بحث و گفتگو با برجسته ترین اندیشمندان زمان و آشنایی هرچه بیشتر با زبان دیگر به نامه نگاری با آنان می پرداخت. افسوس که هیچ کدام از نوشته به بهجا است. زیرا آنها را در فروفتگی درختان و در جاهایی میگذاشت، که تنها خودش میدانست و همهی آنها اکنون پوسیده و از میان رفته و یا خوراک سنج شده است اگر آن کاغذ ها مانده بود بدون شک نامه هایی به خط معروف ترین دانشمندان این صده را میشد در میان آنها یافت برای نگهداری کتابها کزییم و گهگاه کتابخانه هایی بالای درختان میساخت و میکوشید به هر وسیله‌ای که بود آنها را از باران و از گزند جانوران جونده در امان بدارد. جای این کتابخانه ها را پیاپی عوض می کرد. کتاب ها را تا اندازی همانند پرندگان میدانست و دلش نمیخواست آنها را بی بشو در قفص ببیند. بر روی بلندترین رجه کتابخانهاش دوره دایره معرف دیده رو و دالامبر را میچید که به کتاب فروشی در بندر لیورنو سفارش داده بود و یکی پس از دیگری برایش فرستاده می شد. از بس کتاب میخوااند چندگاهی گیج و بیخیال شده بود و هرچه کمتر به جهان پیرامون خود علاقه نشان میداد. خواندن خاندن و به ویژه مقاله های بسیار زیبایش درباره زنبورها زنبور ها و درختان و جنگل ها و باقداری آگاهی های به او داد بگونه ای که دنیای پیرامون خود را با نگاه تازهی می‌نگریست. از آن پس کتاب فنی نیز سفارش میداد که یکی از آنها درباره درختکاری بود بسیار آرزومند بود که آگاهی های را به کار ببندد همیشه به انسانها و کارهایشان علاقه مند بود. تا آن زمان زندگی درخت نشینی و گشت و گذار و شکار کردنش حالت بی و حوثانه زندگی پرندگان را داشت. ولی از آن پس هرچه بیشتر دلش میخواست برای هم نوعانش کاری بکند. بیتوان گفت که این گرایشش نیز نتیجه ی با آن را زند بود. فن هرس کردن درختان را فرا گرفت و در این زمینه به کار پرداخت. کار را خوب انجام میداد و دست مازده اندکی می گرفت. از این رو همه زمینداران و دهقانان او را به کار می گرفتند. این را در زمستان می کرد که شاخصاران هزار پیچ لخت و بیبرگ است و گویی همه انتظار درختان این است که کسی شاخه را برای بهار آینده بیاراید و پاک کند تا دوباره گل کنند و سبز شوند و میوه بدهند. در هوای یخین بامداد زمستانی، او را میدیدی دیدی که با پاهای از هم گشوده در میان شاخه های ایستاده بود و با قیچیش شاخه ها و ترکه های بیهوده را میبرید. در باغ های خانه ها همین کار را با عره کوچکی می کرد و درختان و بوته های زینتی را می آرست. در جنگل تبر کوچکی را به کار می گرفت و آن را جانشین تبر هیزم شکنان می کرد که تنها برای این خوب است که درختان تناور را تکه تکه کند. خلاصه اینکه عشقش به درختان مانند همه عشق راستین اغلب با سنگدلی و حتی بیرحمی همراه بود. تن درخت را میبرید و زخمی می کرد تا آن را نیرومندتر و زیباتر کند. هنگام بریدن شاخه ها گذشته از منافع صاحب درخت به منافع خود نیز نظر داشت. یعنی در فکر کسی که باید از روی شاخه ها راه به پیمایت نیز بود. از این رو کاری می کرد که شاخه هایی که درختی را به درخت دیگر پیوند میداد دست نخورده بماند و حتی از این بالاتر بریدن شاخه های دیگر آن شاخه ها را نیرومند کند بدین گونه، از آنجا که هم مردم و هم طبیعت و هم خیشتن را دوست می داشت می به سهم خود کاری کند که طبیعت سرسبز و میهمان نوازه امبرازا هرچه بهتر و دوست داشتنی تر شود این شیوه ی کارش بعدها در هنگام سالخوردگیاش به او کمک میکرد. درختان رفت رفته حالتی به خود گرفته بودند که او با همه پیری و ناتوانیش میتوانست آنها را بپیماید. ولی آن همه کوشش به دست نسلهای آیندهای تباه شد که کور دل بودند. آزبندیشان آنان را از آینده نگری باز میداشت. توانایی دل بستند به هیچ چیز حتی به منافع راستین خودشان را نیز نداشتند. و چنان شد که دیگر کزیموی تازهی نمیتوانست، بالای درختان گشت و گذار کن